سهر رحمان الرحیم العلم العلم ادراک و شیک علا ما هو علیه ادراکا جاز در کردن چیز بر همان صفتی که اون چیز بر اون هست بر همون حالتی که اون چیز به اون چیز هست مثلا شما اگر اومدید پرده رو به حالت درستش درک کردید شما نسمت به پرده علم دارید دیگه علم تون درسته ولی اگر نه برعکسش علمتون بود، دیگه اینو نمیگن علم میگن, میگن جهل. شما نسبت به فرد چی دارید؟ جه. جهل دارید. خب ادراک و شی در کردن چیز علاوه عليه در کردن چیز همانطور که اون چیز در اون حالته نه اون چیکه که تو درکش میکنی بیوند. در ادراک و شی علاوه عليه در کردن چیز همان طور که چیز اون حالته نان فهمی که ما داریم ادراک انجاز من ولی درکی چی؟ خوشه و جزنی حالا توضیح میده از همین تعریف میاد می میگه که ادراک مانند فهمیدن ان الکل اکبارو من الجزی خب این که ما میگیم آقا کل همیشه بزرگتر از جزه این علم هست انجه النيس بعدا نجد شراء عن النية شرف في العبادة فخرج بقولنا موغيك قفتين ادراك الشيء با انقيت شتي في خارج مشه عدم الادراك بالكلية موغيك مجين ادراك الشيء عدم الدرك ازین تعریف خارج میشه ادب دانی کلی معنی و اینو چی میگن ویسما الجهل البسيط. میگن جهل بسيط. مثل بس اینو از سال متا کانت غزو فیقول لا آدی. دوستم که دیگه به پرطرفدار جنگه تبادر که بوده اگر بگه نریدانم اینو میگن جهل بسيط. اگر دقیقش بوده باشه میگن علم. اگر شک باشه هر کی یه چیز میگه جلوتر میاره و خرج به قولنا علی و هو عليه موقعی که در تعریف علم آوردیم درکش بر آن که هست ادراک او علی وجهی یخالف ما هو عليه پس خارج شد اگه تو چیزی رو برخلاف واقعیتش بدانی برخلاف واقعیت چیزی رو بفهمی اون موقع اینو نمیگن علم چرا چون در تعریف علم آورده بود درک چیز بر آنچه که هست درک چیزی بر که هست, چیز هست و اگر کسی مخالف آن چیزی که برش هست بفهمد اون موقع این نمیشه علم پس دقت کنید اون بود جهل بسیت کسی بگن نمی‌داند اما اگر اومده بود برخلاف واقعیت فهمیده بود بش میگن مغه ویسمه الجهل جهل مرکب مثل این یوسعله متا کانت غزوة بادر من ازش بپرسن جنگ بادر کی بوده فیقول فی في سال الهجره سال سه من اسم جنگ بادر سال سال بعد فیمیان و خرج بقولنا بقالنا و مولهی ما گفتیم در تعریف علم ادراکا جازمان جازم یعنی چی؟ قرعی یعنی یقینی یعنی نه روی شک ادراک و شه ادراکا غیر جازم اگر توی چیز رو بدونی ولی با غیر جازم باشه اون علم بهش نمیگن به اون علم نمیگن نمیگن نمی تو به اون چیز علم داری له <تصفيق> بحث يحت عده يكون على غ الواج الذي اد کو بگوول ای که احتمال دارد دانشهایی در نزد او حذ به غیر حالی باشد که دردش کرده است خلاشان مظال علما بههم علم نلیگوید ثم ان تبح عده أحد احتماله اگر در نزد شخص یکی از دو احتمال راجهح بود ی یکی قویتر بوده شک بوده ولی یکی چی بود؟ قوی تر بوده فراجه ها زن باون راجیه بگن من نسبت به این چیز زن دارم و المرجوه ها وحن اونی که مرجوه ها اشتی بگن؟ وحن آقا وحن داره معنیش اینه نسبت به فلان چیز و انتصاوال الامران فهو شک و اگر با هم مصابی بودن احتمالش احتمال بودن که این باشه یا این هر دو تا ولی با هم چی بودن با هم مصابی بودن به این میگن شک به این میگن چیز مثلا به یه مثال که بودن شما کنماز مثال میگن ممکن است یا, در... یا علم به چیزی دیگه فرق نمی کنه. اگر شما یقین داشته باشید از چنان علم اگر یه چیزی رو ندونی و بگین من نمی‌دونم بهش میگن جهل بسی اگر یه چیزی رو خلاف واقعیت بدونی بهش میگن جهل مرکب اگر شما نسبت به یه چیزی دانسته ای داشته باشید ولی احتمالی باشه چه باشه؟ یعنی که اون احتمالی که در نزد قوی سره بشیدن چی؟ و اونی که زي افترید بشیدن چی؟ و اگر دانسته شما به شکل مصادره احتمال اینجا جادگری شما چارک ایش کلمش تهرجن این این و پس درک به داره یا درک شما یک درک کامل هست و صحیح یا درک شما به جهل بسیط هست یا به جهل معتاه هست یا به زن هست یا وهم هست یا شک این پنج رو داره درک افراد نسبت به ایتیزای دیگه چن حالات داره؟ خانج حالاتو داره که توضیح داریم و به هر سوالی انا عنا تعلق الادرافی به ها کلی و با این بیان گشت که درک به چیزها درکی که به اشیا متعلق میگیره به چیزها تعلق میگیره اذا از زیر هست یک عقل اون دارک تو یا درسات سطح علم هست و هو ادراک به شيء الا ما عليه ادراک جازمه و الجهل بدون درک می دان درک چیز در همون که داره به شکلی یقینی جازمی جهل بسیط جهل بسیطی بسیط ناسکه و هو عدم ادراک بالکلیه که تو چیز اصلا ندونی مثلا در رابطه با کولر را اگه سوال بپرسن چی هست تو میگی من نمی نمیدونم ها اینو میگن جهل رسید ولی اگر تو فرسوه کولر چیه تو گفتی اونی هست که مثلا باش ماهی میگیرن پس تو به جهل مراکب داری نسبت به بس این که تو نسبت به اون اصلا آباهی ندارم میگی من ندارم یعنی یک آباهی غلقی در زندت نیست برخلاف جهل مراکب در جهل مراکب تو جدای نسبت به چیز یک درک اشتباهی تو زهنته برخلاف واقعیت و بسیده از مراکبش دیگه ساده تر این بخدا اون فی است. جهل براکب و هو ادراک و شیده از وجه يخالف ما هو علیه جهل براکب در کردن چیزی برخلافه انتکه هست در کردن چیزی برخلافه خودش شار ظن و هو ادراک و شیده احتمال زید دن زن چه چیه هست کردن چیز با یک احتمالی با یک احتمالی که بر علیه این هست و مرکوب هست علمت اینجا شک داریم، ولی یکیتون چه هست راجه شرک اینو میگم زند وقت هم برخلاف زند هست و در کردن نسبت به چیزی هست با احتمال با احتمال زیاد راجعش، یعنی تو اون مرجوه در ذهنت، اونو میگن اون مرجوه رو میگن چی؟ وهم. شکم ادراک چیزی با احتمال با احتمال زیاد، به شکل مساوی. یعنی آقا شک تو نه این طرف بیشتره نه اون طرف، بمان تو نه این طرف بیشتر نه چیز، از دست که حالا من این کارو کردم یا نه کردم، به شکل مساوی. ولی اگر بالاتر رفت میشه زن اگر از زن درصدش پایینتر اومد یعنی از 50 درصد اومد پایینتر بهش میگن روام از 50 درصد رفت بالاتر درجهش بهش میگن چی زن اقسام علم یعنی قسمه العلم الى قسمت اس بار دو قسم خود علم که این تمام این جهل و فهلا رو تعریف کرده قاصرین که خود علم مبغید. خود علم دوباره تقسیم داره خود علم كثيراً يتبقى علم, جا.. علم داريا ظن نيس وعن نيس جهل نيس جهل بسيط ومرحكا علم داريا ولو خده علم بعضها متيوش؟ آره يعني قسم العلم الى قسمين ضروري ونظري ضروري ونظري اقد بدل عز قسمين مثال شكرين فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضرورياً يبقى لي علم ضروري انا عزك إدراكي قامتك ندني درجة ضروري باشي بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال بقوليه ك بدون النظر واستدلال بدون إنك در نظري يكوني استدلالي يكوني بالنشر قبول داشته باشي معنان دي كالإلم بأن الكل أكبر من الجزء علم بيهن كيس كأها هميشه كل ما سيد أزيه بسطولش بزرگتره <تصفيق> آره ديه إنه هو علم ضروريه يا مثلا أن النار حارة وان محمدًا رسول الله ومحمد رسول الله اما علم نذري ما يحتاج الى نذر واستدلال قدوم صالح <تصفيق> بحث الخبري وغيره يجب ان شو ما والنظريو والنظريو ما يحتاج الى نظر واستدلال حرف اغسل سهل دروسه ناسفة بيباقيه ازول جابيه والنظريه ما يحتاج الى نظر واستدلال نظر ولك نياغ رش داره نظروا استدلال وجود كالقلم الوجوب النية في الصلاة معنى ان البرسان بواجب ودن نيات دارناس شو ما عين بقدر كتبه بقاعده اه استدلال خليل ولی برای اینکه مثلا روز روشنه یا شب تاریکه دیگه این برای نیاز به استدلال نیست این خودش از علوم ضروری هست سلام معالی